Peace. Peace. Peace. سلام می کنم به شنوند های بیس کمپانی به سپانسری بت باز اومدم اینجا مصاحبه بکنم که با طرفدارو کسایی که دوست داشتن این سری جوابا از طرف من بشنون صحبت داشته باشم خب من سهرابم لقبم ام جی بازی شروع کردم و فعالیتم از حدودا 15-16 سالگی بود که ما دیگه به این سبک رپ خیلی گوش میکردیم اون موقع بعد اول شنونده بودیم خودمون هم مثل همه کسایی که تو این سبک فعالیت میکنن اول خودشون یه روز شنونده بودن بعد دیگه ما خب خارج از ایران بودیم رفته بودیم تحصیلات حالا فکر کنید در بیرستان اونجا داشته باشیم و دیگه ما تنها بودیم اونجا تو غربت و خیلی بیشتر کاره ایم این ام و داکتر جری و دی 12 که اون موقع تازه تشکیل شده بود و شروع کردیم به گوشتادن بعد دیگه علاقه به شنونده بودن تبدیل شد به اینکه دوستشین خودمونم یه سری چی رو خلق کنیم و بنویسیم و دیدیم که نما میتونیم قابلیت شعر نوشتن رو داریم دیگه طرفدارا بیشتر از من فکر کنم بدونن که دیگه این تاریخ تاریخچه داستان چی بوده که ما اول رو دو سه تا آهنگ کاور خوندیم یعنی بیت ماله کسای دیگه بود مثلا آهنگای معروف آمریکایی بعد دیگه کم کم دیگه مهرد اومد و آهنگسازی رو شروع کردیم مهرد خب آهنگسازی خیلی خوبی بود موزیسین خیلی خوبی بود و هست و اینکه اون بیت‌ها رو شروع کرد خودی زدن و ما دیگه شروع کردیم Ruby te خودم کار کردن و بعدم که بعد چند سالم که Айرزو و سیاوش اومدن دیگه گروهمون شد 5 نفر و بعدم نسیم اومد و به عنوان خواننده دختر دیگه این شش نفر بودیم و سالیون سال همکاری داشتیم تا امروزی که اینجا رسیدیم واما چرا بدی مگه تنت میخواره انگاری چرا زدی نگا رفیقم میشه دعوا مرافه بد شرف و خرافه اگه کل داری میگم بیا فردا سراغت مثل کاج بیا کرکات بریز انگاری واجبی هم. همه دوستا با من نشدم کار کرستم توی روستا ها منزا میخوان دوستا رازم دورا وره ما دیگه کیف کوکه تا تنها جایی که منو ببینی فیسبوکه نزا قراره شهر دیگه با سردار شهر تو میدم سوار چنی مثل شهر تو که فوش میدی فقط وقتی با تلفنی میگی قاتل خلی ولی دلشو نداری بیا معامله کنی همه لات بازیات واسه مامانه بوده خون زیادم که عادت ماهانه بوده آی پت شده با من چون ازت صد دومر شده کارم این چیزایی میگه انگاه جنگ شده واقعا چرا بدی چرا بدی چرا بدی آی بد شده با من چون شده راجب فعالیت پیش رو هم که خب من زیاد برنامه ریزی واقعا یعنی من شخ باید تو تمودش باشم یهو ممکنه توی سه ماه خیلی فعالیت هم بره بالا ممکنه چند ماه اصلا فعالیتی نداشته باشم فعلا که این آهنگ صدقازو با سامان دادیم ولی خب پیش رو کارایی که داریم با سامان حتما چند تا سینگل با میخوایم بدیم شاید اصلا آلبوم بدیم منو سامان با هم دیگه چون من و سامان همیشه دوست داشتیم با هم کار کنیم ولی خب به خاطر اینکه تو گروه بودیم و شخص موقعیتش پیش نیامده بذار الان اسم می کنم که یه موقعیت خوبی هستش که بخوایم با همدیگه کار کنیم و اونجور چیزایی که همیشه تو مغزمون ایده‌ای که داشتیم رو عملی کنیم بعد تو آلبوم ایرزاینا تو آلبوم ستاره بازی ایرزا و سیاوش و بهزاد حتما هستم تو حداقل تو دو تا یا سه تا شعر و انگاش. بعد دیگه خودم کار تکی هم یکی دوتا دارم در نظر که حالا اگه وقت داشته باشم و برنامه همونجوری که می‌خوام پیش بره حتما میشنوین اینا رو به زودی خلصه سالت فکر کنم پرکار و پرباری باشه از طرف خود شخص منو امیدوارم که طرف دارم حال کنن <متصفيق> شخصی. اومده نا؟ شخصیه در نمیزنم میام بالا لگت جایی نمیرم اینجام تا ابد نرم میرم واسه حل هرچی سختی و از اولاً با مسایل کله ور میرفتیم از سن سلام که درد نمیکنه واسه درد سر ولی با از در بزن بدشم کله کرد دلم هم سیر باشه با فکر گرست است تو ما درستن من لغمه هم درستست یه سری هم میبرن تا میخورن لطمه اینا گنده علکی همش حجمه. اینا نکته نسنجیدن فقط هجمه دوتا جمله قشم میگن عمل کشکه کش یه لغمه چپم میشن اصلا مزده الان وقت هزمه بعدش خواب خوب میچسبه اینا فکر کردن همه چی به لفظ نه نرسیده مغزشون چرخه قضا منظمه بلاخره قوله به بقیه مقدمه نه که عصبانی باشه فقط مسممه اون همه رو میخوره این مسلمه مستنمه مستنمه مستنمه راجبه اینکه اعضای قدیمی زدبازی دوباره در پروژه به صورت مشترک همکاری دارن یا نه حالا من زیاد نمیتونم راجب به آینده از طرف حرف بزنم ولی خب همین الان همکاری داریم با هم دیگه مثلا منو سامون کار میکنم با هم دیگه من با آرزونا کار میکنم مهرات کاراشو داره میکنه حالا بعضی وقتا من مثلا تو آلبوم تونل بودم با مهرات. سیاوش تو آلبوم تونل بود اینکه حالا همه دوباره جمعشن توی آهنگ نمیدونم. منم زیاد میگم نمیتونم از طرف برگرف بزنم. خودم شخصا امیدوارم که همچنین اتفاقی بیفته چون فکر کنم که خیلی خاطره داشته باشند با این ترکیب حالا 5 نفره ما و فکر کنم کار جاله باشه ولی هنوز برنامه مشخصی نیست که بخوام قولشو بدم به کسی بدونام اور زوتین تو بیارم ولی نگران نباش چون که مثل تو زیادن نه بیمو بی مبی تمش تماش اسفتو میرادم به من میگن امچ یعنی زاخره اصلی من چلو کبابم تو مثل سالاد فصلی دیگه بازار گرمنی لایه لیزای گروه هم همش میسازی دروغا به ما میگی اونوری خودت در مدت اونبال ویزای اروپا نتاسرات میدی بیا خاصگاری تنقلات میدیم این چیز عادیه بابا نه یا لفظ سلاتی داشی شی بود ورده بودی آدم قحته حاجی دهش بونت چی میگه مجازی و فحاشی در کامنت ها خیلی خیلیا بدونن. والا من خودم با وجوری که ما آهنگمون همون چند تا اول خب الفاظ رقیق داشت، اینو نمیتونم انکار کنم. ولی خب سالانه بعد که میگذر آدم خب بزرگتر میشه کم طرز فکرش پخته تر میشه و بعدم این که خب معروفتر میشه اینه اون موقعی که ما خود من یه سری الفاظ میگفتم شاید تو مغزم آهنگ و صد نفر گوش میدادن ولی وقتی یه جای میرسی که مثلا داره میلیونی دانلود میشه و پلی میشه آهنگ ها خب مسئولیت آدم و هر حال یکم سنگین تر و بعد حواستون باشه که خب به حال ممکنه کسایی باشن که سنشون یکم پایین باشه یا گوش کنن یا تاثیر بدی رو کسی بذاره این آهنگ آهنگاست ولی خیلی خب به من میگن که آقا شما تو آنگوتو فوش دادین پس تقصیر شماست که الان زیر ها مثلا فوش حالا من نمیدونم تا یه مقداری من میگم قبول می‌کنم که یه سری فهاشه بوده تو آنگامون ولی دیگه من خودم تو فیسبوک که اون موقع داشتم اون موقع نبود هنوز. خیلی تاکید کردم که با حداقل فوش ناموسی بد ندین به هم دیگه حتی به کسایی که مثلا ما باشون مشکل داشتیم خودم تو آهنگ به هیچ که مستقیمن توهین نکردم الفاظ رکیق بوده اون اول ولی توهین مستقیم رکیق به کسی نکردم یا مثلا بخوام برم به مادر کسی فوش بدم به زن کسی فوش بدم به پدر کسی فوش بدم یا اونجوری نبوده قبولم ندارم و اینکه تو فیسبوکم میگم این مسئله رو خیلی شفاف گفتم گفتم من راضی نیستم کسی فوش ناموسی به کسی بده از طرف من که حالا فکر کنه دو دواتیشه منه منم حال میکنم که طرف رفته زیر فو... مثلا عکس رقیب من فوشخ خارمادر داده واسه منم عکس میفرسته منم بیام کادو بدم بهش که دمهتگرم آقا هوای ما رو نه اینا میگن واقعا اینا هوا داشتن نیست و ما دیگه من تاقود دارم که واقعا این مسئله حل باید بشه تا الان دیگه کسی هم که هستن فش بدن همیشه ربطی هم به هیپپپ نداره مثلا میرن زیر عکس نمیدونم فوتبالیست خارجی، فوتبالیست داخلی نمیدونم رئیس جمهور فلان کشور نخست وزیر بیسان کشور فش میدن دیگه اون ربطی به هیپپپ نداره دیگه پس این مسئله مسئله که تو جامعه هست و این که نمیشه فقط این, این موس به بچسبونی به هیپاپی کم به نظر من بی این مسئله سطحی نگاه کردنه به داستان ما باید بیایم ریشه‌ای تر به مسائل وا کنیم حالا هیپ هم یکی از بخش فرهنگ جامعه ماست قبول دارم اینو یکی از بخشای خب قسمت زیادی از جوانه ما الان گوش میکنن یا مثلا به هر حال رو آوردم به این سبک اونم هست ولی اینکه فقط بیان بگیم که تقصیر رپ و هیپ هاپ خیلی جو که همچین حسی رو دارن میدن به مخاطبشون رسانه باشه یا آدم های متخصص و کارشناس به قول خودشون میان میگن که آقا مثلا مغصر هیپاپ به که هاش خب تو استادیوم مثلا وقتی فوش بوده از قبل از این که هیپ هیپاپ تو ایران بیاد خب اونجا پس اون اون چی بوده پس فقط پس ما نیستیم ولی من موافقم که سعی کنیم که تو فضل مجازی نقد کنیم هم رو حتی مثلا مسخره کردنم هم تیک انداختن اشکال نداره واقعا آدم جنبه داره مثلا یارو میاد میگه آقا تو قیابت چبیه این شده نمیدونم اونجای شعرت اونجوری شوقی کنه ولی واقعا فشت دادن و اینا به نظر من یکم واسه شخصیت خودمون کسی که کامنت میذاره در اصلا اول اصلا بعد همه بود ا زندگی هم چور بود بامول بود بود پامون رو برف و برگگاه خاطره ها داشتی ما هر رو هر تو تو سرما و گرما ولی الان که دیگه وقتی بغل همیم هم کسی دیگه سلام نمیگه چون برام رسیده همه دلار رو هم مثل فوتبال آمریکایی کلاه ها تو هم مثل خما تو ترکی و صدا بلند میشه درآ همسایه همه چراغ روشن میشه چرا ها تو جنگ میشد چیه تقصیر من بوده نکر رو و مثل دندون کم بوده وقت گذاشتم و زدم بیرون از خونه شب همه شب از شدم مثل روزای تقویم سرد بودم بود مثل سوزای بدخین الان دم خونه دو تا چره دونه کارهای بچگونه وقتمون آب شد سال سالوانو دالی عکسمون قاب شد ولی جاتو خالی فقط کاری باری خب یه سوالی که واسه همه هست اینه که چرا همکاری بین بزرگان رب به ندرت شکل میگیره نمیدونم راه چاره از نظر من چیه؟ خیلی دوست هم بدونن که حالا من به عنوان یکی از قدیمی های این کار و هر حال من جز اولی نفر رو بودیم حالا نمیگم بزرگان این سبک ولی خب جز قدیمیان بودیم حداقل دیگه والا من فکر کنم نمیدونم واقعا این مسئله رو منم خب من تا که در اختیار منم بوده من سعی کردم خیلی خودم نباشم من مثلا خب با سروش کار کردم. من. روبیت احساناتور خوندم که اون موقع پرودوسر دیوار بود فکر کنم بعد خب خودم با تیم خودم یه جورایی تیم کاملی داریم نسبتا یعنی مهرات بوده همیشه آهنگسازی ای بوده الان خب خشایار اسار هست خیلی های خوب و به روزی داره میزنده من سعی میکنم با بغیام کار کنم ولی خب وقتی تیم قوی داری دیگه نیازی اونجوری ندارن فکر کنم هر تیمی هر کسی از بچه‌ها که قدیمی بوده تیم خودشو داره مثلا بیت ساز خودشو داره طراح نمیدونم کاور خودشو داره شعرشو که هرکی خودش خودش نویسه نمیدونم به هر حال یعنی نیازی نبوده فکر کنم که همه با هم مثلا بشن کار کنند ولی هر چی که اومدن قدیمی ها و های رپ با هم کار کردن به نظر من جواب گرفته و یه حاله اتحادی به اون طرفدارا ایجاد شده که به نظر من به, به نفع کلا ر بوده کسی zarar نکرده از این داستان قسمتی هم به نظر من شاید مقصر مخاطبه باشن که خیلی جپه میگیرن که طرف میاد مثلا با یه رپر دیگه اکس میندازه حالا فوش میدن آقا تو خوی تو خراب نکن این جمله خوی تو خراب نکن من نفهمیدم ایش یعنی میگن صلاح ملک خیش خسروان دانند یارود میشه کاسه داختر ازاش خود هنرمند مثلا اومده با یه کسی عکس انداخته خب قبول داره اونو مخاطب طرفدارش میگه آقا تو اصلا با اینا نگرد خودتو ابوردی پایین خودتو خراب کردی در حالی که خب اون خودش عقل داره باه منطقی اومده این کارو کرده بعد احترام بذاریم و اینکه فکر کنم خیلی از ما میترسیم اصلا با یکی همکاری کنیم از اینکه از تبعاتش میترسیم واقعا منم طرفدارم چی میگم به نظر من این آرتیستان باید یعنی خود آرتिस्टان باید بیاد بگه که من مهم نیست واسم یعنی خیلی جای نظر مخاطب مهم ما، جایی که سازنده است، جایی که میخواد تخریب کنه، باید بگه که آقا من کارام میکنم حالا ب... من مثل این که اینکه او تیک‌تاک شروع یه آهین دادیم همون اولو خیلی از طرفدارا جبهه گرفتن که آقا رفتی با اینا خوندی حالا صرف اینکه خب تیک‌تاکی ها چند سال کوچیک‌تر از ما بودن. ما هم هم میدونن که خب قبل یعنی ما اول شروع کردیم، اون‌ها سالیان بعد اومده بودن. ولی بله خب من اون موقع اطمینان داشتم به تصمی که گرفته بودم مطمئن بودم که اینا هم آیندهشون خوبه هم زمان اون خوب بود و الان میبینیم که دیگه کاملا جا افتاده این مسئله که حالا من بیام رو بیت خشی بخونم خیلی هم دوست دارن خیلی هم استقبال میکنم واسه خود آرتیست هم به نظرم باید یه جورایی تو خط مقدم این داستان باشه وگرنه خب نمیتونیم وایسیم هرچی که طرفدارا مثلا به اون خط میدن همون جوری بریم جلو ما ما باید بریم خط رو بدیم با کمال احترام به طرفدارا ولی میگم بعضی وقتا آدم باید ببینه خودش مغز خودشون حس خودش چی میگه اینم نظر من راجب همکاریه بین بزرگان رب که امیدوارم بیشتر بشه و از منم خواهید دید منم به احتمال زیاد امسال هم همکاری خواهم کرد با دو تا از بچه قدیمی هیپ هاپ که تا حالا دو باشون نادم و خب این این حرکتم در راسته همین چیزایی که دارم میگنم پسر بد میشه یه پدر بد اون راه راست و ول میکنه بزنه چه جدیدن حس عجیبی نوک دستمه جوکنی فکر کنم این کوک دستمه همیندازم سر رفیقای بد یه عمر کیپای لش میشه یکی پای کیفات ه خوندست این زندگی سریال مسخره از هر چی هم بگی داره تشه یادش بخه تیکه های رپی پشت موتو سیکلت با رفی غریسه های شدید تویص کالباس توی کیسه های خرید همیشه پای همینه من جنسم خراب انگا سااقیم بد ها ولی فکر نمی کردم تا این حد بود نمیاد خب سوال بعدی خ میخواام بدونم آیا فاخوشی در آهنگا از نظر شما صحیح هست و این کار آثار بدی دارد یا ندارد خب من میگم بازم توضیح رو فکر کنم بیشترش رو دادم تو قسمت قبلی که اگه گوش کنین گفتم که ما اولش فیلی الفاظ رکیگ داشت ولی اون موقع خب زیاد مخاطب نداشتیم بر من نظر شخصی من که حتی شاید مثلا علی با من مخالف باشه یا نمیدونم سامان با من هم نظر باشه یا نباشه کاری به بچه گروه ندارم نظر شخصی من این که الان که ما اینها مخاطب داریم دیگه کلمه رکیک که من ترجمهیدم استفاده نکنم این یه چیز شخصیه تصمیم شخصی منه ای کسی هم غیر از این نظر داره من احترام می‌ذارم آرتिस्ट باید آزاد باشه تو تصمیمی که می‌گیره رپ هم به نظر من تا جایی که میشه نباید سانسور کرد واقعا ولی به خاطر شرایط جامعه که ما تو زندگی می‌کنیم به حال ایران یه که قبل از انقلابم تو سینمامون مثلا فوش رکیک نبوده واقعا یعنی بحثی نیستش که الان الان قانون کشور اسلامی باشه نباشه به هر حال یه جوری حجاب و بوده تا جد تو جامعه که به نظر من الان که ما دیگه اینقدر مثلا مخاطب زیاد داریم به نظر من اثر منفی هم نداشته باشه اثر مثبت قاعدتا نداره پس به حتی همه این فوشو رو بلدنا اینم بگم مثلا این طور نیست که کسی بیاد آهنگ منو دانلود کنه فوش من بدم بعد اون فوشو یاد بگیره فوش تو جامعه هست فوش تو سرویس مدرسه هست توی کلاس هست توی نمیدونم استادیوم هست تو کوچه بازار هست توی خونه هست بعضا خیلی خونه ها متاسفانه بین دوستا هست به صورت شوخی نمیدونم تو تمام جامعه همه جا فوش هست فوش قسمتی از ادبیات هر کشوریه که برای وقتی که عصبانی میشه به کار میبره اون الفاظ لکی کن شاید به شوخی باشه ولی خب میگم تا جایی که مثلا من خودم شخصا درگیر این کارم من شخصا خیلی ساله که ترجیح دادم که الفاظ رکی که نباشه به دلالی که خودم حالا دارم میگم یه سه تا شخصیه ولی یه کسی هم که نظر غیر منو داره نظرش کاملا محترمه و انتخاب خودش هر کسی مثل یه نقاشی که میگم من یه عکس مثلا یک عکس مثلا حالا یه لختی و من میکشم و عکس لختی نمیکشم اینم هنونه کردم پر تومن لایه جیبا داره میچربه مثل روغن مایه بیا رسیدم من به بلندای همه هدفام روی قلم سبلان نمیدم جایی فورم فوران مردن از الان قدم سرطان داخلی که استرکت رفونه کینس برگشت شاهنامه به گردی اسمم هست تو تاج داری ولی توی سناپچت شنیدم میگن لفظت عالیه گنگستریل دادا چرا دخلت خالیه اینجا با وسیعت بالیه گنده بودنم که به گردش مالیه زر مهم زور کیلو چنده، هرکی هم پول لاره اون نیرو منده راجع راهکارهی که میتوان, مثلا میتوان کسانی که شنونده این سبک نیستن را جذب شد از نظر شما موسیقی رب جای پاپ را بین جوانان گرفته است یا خیر؟ من به قسم دومی سوال اول جواب میدم که پاپ صد درصد موسیقی رب خیلی ساله که جای پاپ را تو ایران بین جوانان گرفته چون که پاپ نتونسته نیاز نیازه جوانان و نوجوانان جواب بده واقعا یعنی خب نمیخوام میا بازم نمیخوام سبکه ببرم زیر سر من خیلی از آهنگ های پاپ دوست دارم خودم گوش میکنم توی سری فضاها ادم بیشتر خب پاپ باید گوش کنه تا اینکه مثلا کی هاپ یادم میره مهمونی یا عروسی نمیتونم آهنگ مثلا چرا رو بذارم تو عروسی که ولی خب بین جوونا اگه بخوایم ناکن به صورت روزمره اون نفوذی که رفت تو زندگی جوونا کرده و توی مغزشون و قلبشون کرده پاپ نکرده و همه جای دنیام همینه کلان رپ یکم زند... سبک موسیقیه که یه نوع سبک زندگیه پاپ شاید سبک زندگی نباشه پاپ فقط موزیکی که شما تو ماشین داره میری سر کار گوش میکنی یا یه جا میشنی می‌رقصی و حالا چند تا دوست جمع میشن ولی هیپ جورایی میشه قسمتی از زندگی شنونده کلان ماهیت این دو تا سبک با هم فرق داره و اینکه مقایسه این دو تا سبک اصلا از بیخ به نظر من مقایسه غلطیه درست دو تاشون سبک که موسیقیاین ولی اصلا ماهیتشون خیلی با هم دیگه بیشتر از اینا فرق داره که میخوام مقایسه کنیم ولی خب الان فکر کنم اگه ما رأی گیری کنیم بین نوجوان و جوونا مخصوصا فکر کنم اشتباه نکنم این حرفو میزنم فکر کنم پسرا بیشتر ربط تو زندگیشون پررنگ‌تره تا پاپ ولی بازم پاپ هم جای خوش داره پاپ اصلا از کلمه پاپیلر میاد دیگه یعنی کلن آمه پاستن پس بیشترین سبکی که همه میتونن راحت تر گوش کنن و با هم خانوادگی گوش کنن 100 سر درصد پاپ و تو ایران هم پاپ حال داریم یعنی خاننده خیلی خوبی داریم که تو این سبک کار میکنن راجب این که کسایی کی که شنونده این سبک نیستن و جذب کنیم والا فکر کنم کسی که کی شنونده این سبک نیست الان دیگه سخت جذب کردنش و بهتره نشه یعنی حتما لازم نیست که ما همه رو رپی کنیم یعنی بعضی بعض از همکاره من تو این سبک کلا خیلی دوست داشتن که همه رو رپی کنیم مثلا یه خانواده رو بیان آقا از نوه تا بابا بزرگ بیان رب باسشن من قبول ندارم. من کسی که حالا اخلاقش، شخصیتش، زندگیش، نحوه، تفکرش میخوره به رپ، سبک رپ و اون حرفایی که زده میشه میاد خودش جذب میشه. ما قرنیز کاری کنیم که کسی جز یا دف شد به نظر این خود مخاطبی که این همه موزیک مختلفی که هست انتخاب میکنه یکی مثلا اخلاقش بیشتری جوریه که راک دوست داره دوست داره مثلا متال گوش کنه یکی بیشتر هاوس دوست داره سبک زندگیش چجوری که هاوس دوست داره نمیدونم یکی موزیک موزیکال مثلا ایرانی دوست داره قدیمی جدید زیاد من دنبال نیستم که همه رو جاز کنم نه من زیاد فکر کنم علکیه که آدم سعی کنه همه رو جاز کنه چون کسی که بخواد جازشه شده تا حالا دیگه چرا بخوایم زور به زور بیاریم همه رو بخوایم شنونده رب کنیم اون یکی میخواد که باشه با از او یه پسدی که سر براه شیعتونی نمیکنه لا اون یکی میخواد که باشه باش از او یه پسدی که سر براه شیعتونی نمیکنه لا اون یکی میخواد با یه اخلاق خوب صبح سر کارخونه شبش زوب بکنه هر کجا حرفاشو گوش بر بکنه هر دوتا دستشو بوس اون یکیو میخواد واسه خونه زندگی نه اینجهی که میذاره اون, اون یکیو میخواد که اصلا من نیستم چون میدونه اگه با من باشه واسهش با ریسکم اون یکیو میخواد که باربیش باشه کسی بیا سری بگه فابریک داره که باش تیک داره میخواد باتریش باشه وقتی کم میاره همه حرفاشم هم خنده داره خب. به نظرشون افرادی که به اسم رفت فعالیت میکنن و در جاهای دیس‌لاو یا انگای مینستریم با موزیکایی که به اعتقادات مردم توهین میکنن چیست این سوال سنگینه چند تا سوال تو یه سوال جا داده شده اصلا و آیه موزیکا باعث شده تا رپ چه بعدی پیش افراد بالای سی سال داشته باشه بازم این قسمت بندی بین سن و ایناست به نظر من خب دیس‌لاو که اصلا را... کلا یه سبکی از رپ که اسمش دیسلاوا نمونم دیسلاو, دیسلاو فکر کنم تو آمریکا هم نباشه فکر کنم مثلا تو ایران تو رپ ایران فقط اختراع شده این کلمه دیسلاو معمولا همه میدونیم دیگه با هنگهای میگن که طرف داره راجع به عشقش میخونه ولی باره منفی داره مثلا چرا رفتی و برنگشت برنگرد و نمیخوامه تو نمیدونم لیاقت من نداشتی و اینا خب این همین سبکی که برحال طرفدار زیاد داشته تو این چند سال. دیگه روی هرکی که تجربه هم چین شکست شکقی داشته باشه خب فکر کنم به سمت این سبکد چیزیشه کشیده شه مام داشتیم یه همچین چیزهای ولی خب بیشتر فان بوده مثل مامال هم بودیم منو سیاباش بود یا اون یکیو میخواد خود من بود که حالا یه ولی سعی کردم می کمم خیابونی تر رو به قول معروف لشتر باشه تا اینکه که بیفتم به پایا رو که طور رو خدا برگرد اوننا زیاد دوست نرم خودم. و اینکه آهنگایی که به اعتقادات مردم توین میکنن که خب دیگه اسمش روش چه که به اعتقادات مردم نبرد توین که خب چه تو آهنگ چه تو فیلم چه تو مقاله چه تو کاریکاتور به نظر من مخصوصا تو کشوری که بازم میگم یکم فرهنگ سنتی داره و اینکه مردم رو اعتقاداتشون حساسن بهتره که اونجا آدم دست نظرره رو حساسیت حالا بعضیا دست میذارن قصدشون معروف شدن دیده شدن یا بعضیا نه میخوان مثلا یه پیام و برستتونن نمیدونم دقیققا ولی موافق نیستم که آدم با اعتقاد کسی کاری داشته باشه اعتقاد شخصی هر کسی مال خودشه و اینکه ای خب تو مم... تو کتی هم که برها ر به موزیک زیر زمینه و غیر و مجوز فعالیت رسمی کنسرت نمیدونم پخش آلبوم نداره خب بهتره رپرام رایت کنن یه سری مسائل رو پیشنهاد ایران که مشکلی واسه سری فعالیت نیست سخت مخصوصا که تو ایرانن پخش ایجاد نشه چون مثلا طرف تو آلاسکا نشسته داره یه سری انگار رو میخونه خیال راحت و اینا ولی خب اون داره ضربه میزنه به هیپ داخل ایران و کسایی که اینجا دارن فعالیت میکنن به نظر من ما بازگاهی مشکل داریم تا بخوام مشکلات جدید واسه خودمون درست کنیم. شاگرد اول درس خیابون میترسیدن از شب بچگی بره میبود تو بر رو بیابون الان آدم استابی شده باز دست بدی باشون تجربه بالا پیرشیره مشتاش سلطان اسفال قیرزیره کفشاشه جا نمیزنه هوا پس بشه تازه گل کاشته و میگن الان فستشه په حرفش سند لفظ خالی نیست سری زود میده تو یه لحظه خوابیدی این روزگارم تلخه و مزه جاینی ولی بازم میگیره اون دست پاینی چند داره درس پس میده اون کشورم نیست ولی پرچم داره اینا همه میگن دست به قمن ولی سلامتی عرضه لفظ قلم آره کله ها پرمغزه برم داره گوششون از زبوناشون خسته ترن آخه اینجا به کسی رونه میدن یه خونه بیدره که قانوناش جور دیکن ببین اینا پنده پیش کسبته بسه هر بابا پیش خدمته به ریسکش نده. هر حرکتی واسه نونه چشای کاسه خونه سخت پشم آسمونه این دو خاله ها ترسیدن نمیدونن دارن نسخی پس میدن میگن کوچه مال کف خوابا راست بگی جنگل هم کف درست اینو ها کی ترسیدن راجب کسایی که به پیش کسفت و قدیمی های رب توهین میکنن و دیس میدن یه بحث زیاده یه سری ها به نظر من واقعا واسه جبل توجه این کار میکنن واسه اینکه که دیده شن میان مثلا از اسم کسایی که شناخته شدن استفاده میکنن که خودشون حالا یه سرسده در کنن به نظر من درست نیست به نظر من تو هر ای میخواد ورزش باشه میخواد سینما باشه میخواد نمیدونم موزیک باشه هنر هر سبکی چیزی باشه مثل اینکه آدم چطور به باباش احترام میذاره حتی اگه آدم باباشو شاید یکی باباشو قبول نداشته باشه ولی آدم به باباش احترام میذاره حتی اگه بابا دوزن بوده باشه تو زندانم افتاده باشه رو حساب اون پدری که داره اون بزرگی که داره احترامش واجبه مثال حالا مسجادت صرف کنن که بی ربطه مثال من ولی از نظر من اتفاقا همینه چون کسایی که این راهو آسفالت کردن که شمایی که مثلا الان اومدی داری فعالیت میکنی داری تخت گاز واسه خودت گاز میدی این این جاده زمانی جاده خاکی بوده پر سنگ بوده کلی لاستیک پنچر شده کلی گیر ریخته شده کلی خاک خورده شده که این جاده رو آسفالت شه و اینکه یکم کم کم لطفی و بیچشم و که بخوایم به قدمیای این سبک توهین کنیم. منم خودم هیچ وقت هیچ وقت دوست ندارم که به ها... کسایی که هم نسل من بودن تو هیپ هر چندم که اگه سبکشونم باب میل من نباشه ولی همیشه احترامشون واجبه واسه من از طرفدار من می‌خواستم و می‌خوام که همیشه این طرز فکر رو داشته باشن اگرم نقدی دارم بکنن ولی توهین و اینا دوست ندارم حالا بقیه‌ام میگم یارو میخواد دیس بده خیلی جالبه یارو طرف میاد مثلا یه تیکه به ما میندازه یا کل آهنگش راجبه ماست بعد اصلا یه جوری حفظ آهنگهای ما رو که من واقعا اصلا عشق میکنم یعنی میگم این از من بهتر حفظه خب این نشونه که این طرف یه زمانی طرفدار بوده حالا چی شده که چرخیده یا حالا به هر نحوی عوض شده نظرش اونو نمیدونم ولی اینو میدونم که خیلی‌ها به خاطر این رو بالا اومدن میان بقیه رو مثلا می, ب... می و ببرم پایین ولی هیچکیو با... کوبیدن کسی نمیاد بالا. آدم با خودشو بسازه. منم پیشنهادم به بچه که دارن تازه کار میکنن یا جدیدن اومدن اینه که آقا سبک خودتون رو ادامه بدین. ایده های خوب و خلاق بیارین وسطو اگه کارتون خوب باشه قطعا میگیره، قطعا میگیره. مام ما اول اومدیم تو این سبک کسی نبود که بخوایم دیسش کنیم. پس یه رای هست واسه بزرگ شدن فقط این نیست آره درستی یه میانباری ولی بعض افتا میانباره تش درست همطور که واسه خیلی بوده اونا تای پیازی زخوا نسر پیاس تقرب میخونی الکیه یا سر نیاز ولی خودت میدونی این کارو اثر کیاس رپ راهپلهش کیان چون که هروره ایران موهنگار میذاریم و صدا اربده میاد البته اینا فقط میخوام پابیت بشینن تا ویت میکشن سری تیش بگیرن ولی فکر نکنم هنوز به هاجیت رسیدن تمرین نکن چون من بازیت نمیدم نه نه من بازیت نمیدم به جون که بیان فقط قافیه بگن ما شوشیه میرن طرف ناشی میگد وره داشو تران تو هر ناحیه میره آسمون بالا سرمونم آبی دیدم، تو که هیچ وقت خیابونی نبودی بدونی واسه همین بهتره توی عروسی بخونی بعدش برو خونه بکندا فخوشگلت تو بوسگن ازیت میشی تو مثل پشت اتوبوس بخه من مثل یه موتور پورشه رسمن و تو میره سرعت صد شکسر حالا کجا شدیدین تازه پرس اول پس آهنگو قطع کن برو قرس سرد حکی پشت به من کرد تا فرداش خابیده در صبح صحب پاشده مثل پرگار را میره آرزا خواه مثل پرگار را میره <متحد> خب دیگه با طرفتارم هم که دیگه فکر کنم همه صبح خیلی از صحبتها رو کردم و امیدوارم که میگم راضی باشن از کاری که ما داریم میدیم ولی خب اگه ایراده هم دارن خیلی وقت داد من دیدم که میگن که آقا مثلا آقا این سبک بیشتر اون سبک بیشتر نخونم نمیدونم اینجوری جوری بخون توم بخوند، فلوتو فس کن، فلوتو آروم کن چرا نه نم گنج نمیخونی چرا با این نمیخونی چرا با ایرزه کار میکنی چرا با مهارت کار میکنی چرا با کار میکنی چرا با اون کار میکنی سیجال بیار نیار نمیدونم از این ها، بدونن که ما همیشه دوست داریم که طرفدارات راضی باشند از کارمون ولی خب یه سریاز تصمیمم با خود آرتیسته و من جایی که صلاح بدونم که یه کاری رو باید بکنم و احساس کنم که اون کار درسته من اون کار رو انجام میدم و اینکه حالا میگم پروژه جدیدم که گفتم هستش چورا و امیدوارم که خوشتون بیاد بازم ما با همه مشکلایی که بوده تو این سفر بازم ادامه دادیم تو این همه سال کار آسونی نبوده به حال این سفر خیلی دغدغه‌های زیادی داره همه میدونن ولی باز هم ما سعی کردیم که پوستمون رو کلوف کنیم و تو مسیرمون بمونیم دم همگی کرد دیگه خیلی خوشحال شدم که این فرصتم داشتم که با همه صحبت کنم تا فرصت بعدی بعدیقرمون همگی یا علی خودن یا. Peace.